بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و السلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و علی و صحبیه اجمعین اما بعد. ده جلسه گذشته بحث گفته قدریه بود از معتدل که گفتند فترت خلقت انسان، جبلت انسان، طب انسان اون چیزی که از روش خلقت شده و در نهاد انسان خداوند گذاشته ولی که یک جسم خالی یک فکرت که میتونه بفهمه خالی از فهم درست از نادرست این تصور معتدله بود که اینچینین برداشتی در سروری فکرت که خداوند در نهاد انسان نگذاشته که حق را بشناسه حقشناسی داره خداوند در انسان نگذاشته گفته ای دو بر خلاف اونها تماما در جهت مقابل اونها برزد اونها قول جبریه قول اشاعره بر این که فطرت بداعت انسانه اصل و مبدئی که انسان قبل از آفرینش قبل از آفرینش قبل, از آفرینش قبل از این که ما به دنیا بیایم، وقتی که خدا ما به سفر را بکنه بنی آدم منظور هم خداون خداوند چون نوشته که ما چیکاره هستیم و چیکاره قائم شد و کی بهشتی و کی جهنمی هست انسان به همون مبدعهش برمیگرده فطرت انسان مبدا انسانه اون مبدئی که انسان باخته بداعت مبدئی که از اون از اون روز اول مشخص شده بهشتی هست یا جهنمی آ این شبهه هست در ذهن اونها یعنی این تصور اونناست. تصور اون چی چینه؟ که انسانی که مشخص شده قبلا پس از خودش هیچ اختیاری نداره فکرت انسان همون چیزی هست که قبلا درش میده فرندی که به دنیا میاد از دبر این حق را از باتل نمیتونید دش بده. خوبی را نمیید دش بده. اگر کافر نوشته شده اون روز از جهنم نوشته شده اون روز بعد خلاص آخر راه هم مسیرش هم باید جهنمی باشه نمیتونه بهشتی باشه به هیچ طریقی از خودش هیچ اراده نداره این گفتهی ای الان میخوام بررسی بکنیم فترت به معنای بداید آیا این حرف درسته یا نه؟ و چیگونی میتونیم توجیحش بکنیم استدلال اولشون به اثر ابن عباس از لحاظ لغوی که ابن عباس میگید لم اکن ادری ما فاطر من معنی فتر السماواتی که در قرآن هست رو نمیدن تو اینکه دوتا حتی قال احدهما انا ففرتها ای من نمیدنسا معنی فتر السماوات تو اینکه دیدم دوتا عرابیتون هم دعوان میکنن این من کندم این من کندم یعنی من ابتدائی این چوه من اوغاز کردم. و اون میگه که من آغاز کردم پس به معنی آغاز و افتدا میاد پس فطرت همون به از لغاز لغوی ما این بس علاقه بدش داریم گفتیم فطرت فطرت به معنی لغویش به معنی مختلفی میدن در لغت پنجتا معنی گفتیم ششتا معنا گفتیم لیکن معنای اصطلاحی غیر از معنای شرعیش هست این از رد ما بر این اصطلاحشون بر اصطلاحشون بر اصطلاحشون چرا معنای معنی افتغا را گرفتید از این اثر معنی دیگرش رو رفا کردید. چه دلیلی دارید بر اینکه این تفسیر لغایی را فقط انتخاب کردید. دو من در همین رد همین اگر قرار باشه اگر قرار باشه که این فترت در اینجا به معنی بداعت باشه پس چه مدخی هست همونطور که قبلا گفتیم فاقم باشه تل الدین قیم و فترت الله و الناس ناصر علیه چه مدخی چرا اونجا از سیغ ممسل و ستایش خدامزه کرده قبل قدرش نیاز به بازش باز کردنش نیست. استدلال دومشون فدلش رو به فرودی خداوند خلداد کم بد اکم فریق هدا و فریق عليهم الضلاله. مبارره. کم بد همونطور که آغازتون بوده برگشتتون همونطور خواهد بود. آغازتون قبل از آفرینش قبل از که به دنیا بیاد از همون وقت آدم کلقطتی کرد. کما بده اکم دوباره به همون سو فر بردیگرین یعنی کافرتون کافر و مومنتون مؤمن. فریقا فریقا هده و فریقا حق علیه مدلاله آیا استلالشون به این آیه درست یا نه از آثار هم به خودشون دارن یعنی استلال هم دارن به خودشون از آثار سعید جبیر و مجاهد و سدیه از طابعی لیکن بحث در استلالشون به آثاری اومده از صحابه و طابعی دو قسمه یا اینکه اسناد اونها درست نیست و یا اینکه اسناد اگر درست هست اگر اسناد درست هست منظور اونها چیزی دیگه بوده برخلاف اون چیزی که ما برداشت میکنیم یعنی گفته شم را میل میدیم به طرف اون چیزی که ما به اشتراکش داریم امام ابن جریره طبری امام ابن جریره بعد از اینکه میاد تمامی آثار مخالف و موافق آثار سید بن جبیر بن عباس و مجاهد و فلان و فلان نقل میکنه آخرش اینینه که میگه گفته ای اینهایی که این ابتدا و ابتدای خلق گرفتن و این اعاله و برگشت بر اساس همون ابتدا میگوید امام این قول این قول اشتباس و صحیح گفته ی حفن بطری قطاده و ابن عباس و مجاهد و دیگر تابعین و صحابه هست بر اینکه همانطور که همان شما وقتی که خلقت شده چیزی نبودید باز بار دیگر روز قیامت به دنیا می آید این گفته است که ما بدأت همان‌جا که شکر مادر هیچی نبود، آمدید دنیا. روز قیامت هم همان‌طور واردند از زیر خاک‌ها می‌آیید بیرون. این معنی آیه است بر اساس گفته حسن بسیم قتاده و عباس مجاهد و ابن جریره هم همین گفته را ترجیح می‌ده و استدلال میکنه به این حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرماید می‌فرماید ای یوحنا انکم تحشرون الی الله غرلا انكم يا ايها الناس انكم تحشرون الى الله اي مردوم حديث در روایت بخاری هست و اي مردوم شما به سوی خداوند ساحیدومت ختنه نشدید سالم برهنه بعد این آیه را تلاوت میکنم رسول الله صلی الله علیه و آله کما بدانا اول خلق نعید نکو این آیه این بداکم تعود را شرح میده و اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله با یکی از آیاتی که همین معما را در بر گرفته کما بدعن اول خلق کما بدعن اول خلق انسانی کسی که مدرش میاد بیرون کما بدعن اول خلق نعیدو اعاده ای تعودون اینجا هم سعودون امده اینجا نعیدو دوباره برش قایم گردون فس رسول الله صلی الله علیه بردن چگونه نبین آیا سلوان می کنن سلوان شدینه که انسانی که همونطور که هیچی نبوده به دنیا آمده باز بار دیگر هم به دنیا میاد باز بار دیگر از قبرش بیرون میاد نه که بر اساس آن چیزی که اول بویه باید دوباره برخواهدش حالا رد ما برای هم بمفصله یعنی چه ردهایی ما میتونیم بدیم این اولی رد ما بود تبخه آن چیزی که امنه زریر تبریدک میکنه دومی رد ما ما در قرآن همیشه لمس میکنیم که خ اعوذ و بازگشت بار دیگر بعد و معاد در روز قیامت خداوند همیشه چی رو تذکر میده همون که مثلا بیا ها زمین میروید شما هم میروید یا همون که نویدا شما به دنیا آمدید دوباره باز بار دیگر خواهی اومد بازگشتی خواهید داشت آیا زیاده یا ایه الناس ان کنتم فی ریب من البعث خلق خلقناکم من تراب اگر درباره بعد معاد اشکال داری شک و تردید داری پس ما هم اونطوری که الان خلقتتون کردیم از خاک دوباره خلقتتون میکنیم کما بدا کما بداکم تعودوا زیاده الله یبدأ الخلق ثم یعيده الله يبدأ الخلق, الخلق. خدامان خر و آغاز کند و باز باز بار آنها را رو برمیگردونن دوباره یعنی باز بار دیگر آنها را زنده کند حالا این آیات و الیه ترجعون ثم الیه آیات زیاده آیه‌ی سوره روم 11 وایه سوره حج این آیه رو ما دقیق درش می‌کونیم رد بر مشرکی سومی رد ما این آیه ردیست بر مشرکی مشرکی ما قبول نداشت بعض را قبول نداشت خداوند این آیه با این خطاب با این توریج خصوصا امتداد ام ادامه, ادامه ای آیه اگر نگاه بکنیم خداوند می‌میاد صریقا حدا کسانی که مشرک شدید شما دوباره دیگر برمیگردید همون که به دنیا اومدین حالا از شما هدایت شده یا در حال حریار و دیگر گمراه شده اید ائدیه دیگر هدایت شده اید و عددی دیگر گمراهید یعنی در چی گویید در مسئله بحث در مسئله بحث یعنی شما ائدیه شما هدایت و اتفاق هدایت و ادهی از شما دوبراهی انتخاب کردن پس بحث خطاب مشرکین این که بعضی خواهد بود نشوری خواهد بود زندگی دوباره زندگانی دوباره خواهد بود این بحث آیه هست و خداوند میخواد بگیر که منم که این کار رو میکنم نبود خاتون کما بده اکم ترودود فریقا هده افاهم اجتون کرده و فریقا کفت این که خداوند میخواد بگویرست که این کارها رو من میکنن نه های شما اینو بدونید مشرکی مشرک... خطاب مشرکی اینو بدونید دوباره دو آتفایی گشت بطخا تو نمیتونه شما رو بر بگردنم خداوند میگه نمیشه که هدرت بشه خداوند بکنه باید هدرت رو متخف و عده این هدای دیافته و عده این دیگر بمراه چاروند در اصل اساس لغا بید. اساس لغت تا جمع نردر بگیریم اصل کلمه ترمون عود عود و اعاده شما میبینید که ستیویزون شاید نگاه کرده باشید مثلا به فردی بازی که هست میبینید هم مباشر فخش وقتی که دوباره میخوان نجلاس بکنم باز با دیگر اعاده درسته؟ یه چیزی که شده دوباره انجام میشه درسته؟ یه چیزی که شده دوباره بازگشت میشه پس اصل عود اصل عود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 خب ببخشید آقایان جبریه ما این بهشون بگیم آقایان جبریه اگر قرار باشه اگر کماب اینجا تا داریم ما کما بدعکم تعودون همون تو که ما ابتدا بوده دوباره بازخواهیم گردان اگر قراره که ما به بل... اساس لغوی بر بگردیم بر اساس قول شما که انسان ثابته از همون اساسی که آدم را خلقت کرد تا آخر اعاده درش نیست اگر قراره کافر کافر باشه اگر قراره کافر کافر باشه از همون اول مؤمن مؤمن باشه از همون اول تو آخر پس دیگه اعاده چه معنای داره؟ تا همیدید؟ ابتدام ابتدا ابتدام؟ تموم شد، باز دیگه اعاده اومد بازگشت شد مفارقه اینجا حد فاصل نفاصل اینجا بگید و تا اگر اساس قول این ابتدا رو بگیدیم که انسان بر اساس ابتداش هست افضل که اول حلقه دوست جهنمی جهنمی رو برشتی برشتی پس اعازه ای کار نیست اعازه ای کار نیست پس این اعازه منفی میشه دیگه بازدشتی نیست بر اساس قول اینها انسان همون یک سال از همون اولی که تو جوگه مادش به دنیا بدم کنفره تو آخرش از همون بچه می رمینه نمی بر اساس قول اینها اون کسی کافر خاطر اون کسی که علی حتی لغت عربی هم ادعاشو نمیکنه، کمکشون نمیکنه. فهمیدوزه. خب، پنجم. دلالت خود آیه مبدأ و معاد. مبدأ و معاد، بدأتم تعودون، مبدأ و معاد. یعنی اینکه خلق بار باز بار دیگر انجام میشه. و این دلالت بر اینه که که انسان بنده انسان بنده هست، بنده خدا بنده اللهی هست، پروردگاری هست که انسان رو بر بگردونه و خداوند با این آیه میخواد بگوید که من عدقی را هدایت کردم و عدقی را گمراه یعنی میخواد به خودش بر بگرده درباره خودش صحبت میکنه. من اینگار رو میکنم خب چه ربتی به انسانها دارد؟ چرا ربتی به فکرت دارد؟ که مثلا ما بید اسلال به فکرت بکنیم کما بده همونطور شما خداوند این کار رو کرده و ادهه این گم راست ساخته و ادهه این هدایت یافته خداوند باز بارده دیگر شما رو برمیگردوند سکاری به بنده نداره که ما بیام این اصلا رو به بندگان بکنیم که بگیم که بله که منظور این است که خداوند جبلتن و در احسان که کسی کافر کافر باید باشه مجبور کرده اصلا ها از همون اول تا آخر این حالا خلاص است. اما سومی. وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين أو يعيش ضد سريكا وأما وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين ده ته مصنن ده شاح همين آية شينو مدين الله عليه وسلم يفأمر إن الغلام الذي قتله الخضر إن الغلام الذي قتله الخضر طبيع طبيع كاثرة ولو عاش لارهق أبوه تغياناً وكفرا أن أن الغلام الذي قتله الخضر اون بچه ای که خضر او را طبع طبعه کافره نوشته شده بود که کافر باشه اگر نیموند پدر و مادرش رو خسته میکرد در خستیگی میانداخت در کفر و تقیان میانداخت پدر و مادرش رو در بحمت میانداخت اصدر آشقه این, این اینه که بله خضر نبا بود کافر رو کشت بچه کافر بود رو کشت آیا انسان می از این، از این آیه، و از این حدیث که این بچه همونجا کافر بوده که رو بشته آیا ما اینشی نیمی اون بچه در همون حالش کافر بود رد اولا معنای حدیث توبع کافرن معناش اینه که نوشته شده در عدل در لوشه محفوظ که اون بنده کافره نه اینکه الان کافره بلکه حال مقدرش خدا در قرآن سیاد میگه مثلا ادخلوا ابواب جهنم الان بری واده جهنم میشه مگن داره واده جهنم میشه ادخلوا ابواب جهنم خالدی نفیه یواب شفنه ها به اصحاق اصحاق ها مده بود نه آیا دلالت, دلالت, دلالت حال دلیل بر این میشه که یعنی اون واقع انجام گرفت بس سیاد آیه مثلا ادخلوا ابواب جهنم. ادخل یعنی الان وارد بشین یا الان دارن وارد میشن خیر. به اعتبار حال مقدره، به اعتبار آینده، یعنی در آینده خداوند خواهد که برید وارد جهنم بشید. و با اینجا هم به اعتبار آینده هست، حال مقدر و اما الغلام فكان اباهم مؤمنين فتشين اي يرضعوا مطغيان وكفر. متاسفم که چی؟ در بحث ولو عاشا ولو عاشا اگر, اگر, اگر, اگر, ولو اگر, ميموند اگر ميموند و ولو عاش ولو عاش اگر میموند اگر میموند اگر میموند الان کفر نیست ولو عاش اگر میموند اگر میموند سبب میشد که چینینو چنان بکنه با کفرش پدر مادرش از بکنه ولو عاش این آیه و این حدیث تریخ در اینکه مقصد از انتباعات کتابت طبعه ای کتبه که در لغت عربی طابعه و طبعه چوب چوب میکنم طبعه یعنی طبعه یعنی چوب کردن و تایپ کردن و دلالت دومان دلالت احادیث بر همینه که این طبعه کتابت مثلا در حدیث در این فیهتبو رسطه و و عملو وقتی که جنین در شکر مادر روح درشده در میده میشه رزقش نوشته میشه و عجلش نوشته میشه درسته؟ پس اینم بر اساس حدیث حدیث را با حدیث و تفسیر بکنید تو بعد آفران یعنی ای کتب رزقه و عجل و شقی و نمسعی وقتی در که روح در جنین درشده میشه نوشته میشه که چی؟ سعادتمند یا شقاوتمند یا رزق روزی و عجلش نوشته میشه بله و در د اگر ماده کاتب کنیم در حدیث کلمه الی امام مو... النووی ده ای لا يرد على السفره فابوه يخرجانه ويمجسانه وينصرانه و, و بعض حیوان که كما تجل بهیمه البهیمه بهمه جمع هل تحسن بها من جدعان اگر ماده کاتب کنیم فرزندی که به دنیا میاد اون حیوانی که به دنیا میاد کی نیست. کنیش گوشش برید نشه چهش موشام برید نشه و اون چیزی که میشود پس از ولادت نه اینکه اون شخص این رو پایه اساس سالمه اساس اون شخصی که به دنیا میاد سالمه بعد این کارها روش انجام میشه روش بریدیم میشه و بر چشم ما کور میشه درسته تغییر حاصل میشه تغییر حاصل میشه در اون شخص در اون نوزاد حاصل میشه خب بر اساس قول اینها آیا تغییر حاصل میشه نمیشه بر اینا گفتن که انسان مو انسانه. کافر کافره، فاسق فاسقه، درسته؟ فاجر فاجره و نمیدم دوز دوزه هم از شکن مادرش هم دوزه. همون چیزی چی که نوشته هست. خب اگر قرار این هست، پس چی لزوما لزومی داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه یا که و واهوی نصرانه، آویه ماجلسانه، بدام نکل به حیوان میدنه گوشش بیشش بریده میشه. خلقش عوض میشه، پس تعظیم و؟ تغییر در خلق ایجاد شده اما بر گفته اینها نه هیچ تغییر حاصل نشده همونی که هست همونه فهمیدید؟ واضحه نمیدرد کنم یکم یا ذهناتون دور رفته واضحه خب اگر قرار بود اگر قرار بود که مصد از این فطرت مبدع خلق انسان بود پس چرا موسا علیه السلام اشکال بهشی همهد؟ موسى عليه السلام اعتراض کرد درست یا نه؟ گفت که قتلت نفسا زکیه تم بغیر نفس شخص داریمی کشی بدونی که جنایات بکنه لفجعت شئن نبرا طرق امر منکری انجام میدی. موسى اعتراض بکنه السلام این اعتراض بر اساس هست؟ اعتراض بر اساس این که انسان انتف بری هست انتف با چی جوالش میده خیر؟ میدوید که نه اگر بموند فیلان میکند و فلان میکند بر اساس آینده. پس موسی علیه السلام اشکالی که بهش بیش اومد بر اساس چی بود؟ بر اساس تغییر که الان هیچ تغییر، هیچ کفری درشن یونی چرا این کارو میکنی؟ و خیلی که جوال میده چارو من جنینه و اما غلام و فکرن ابواه و فکشیند این یوره قوما، این یوره قوما، یوره قوم اراد، ارهاق بکند، این یوره قوم این در آینده، الان نیستنی، الان کافر نیست الان هیچ جناتی متکمنشده، این یوره قوما تغییر نمیکوفرا، پس خزدم شکم بر کفرش نداده، اون بچه هم کافر نبوده، و این در علت آیات سریع در این مسئله، کی مسئله در آینده خواه باقی بود شد، نه اینکه الان همونطوری هست و بوده. آموزشالله آخرش که در سخن تام می دیم امروز پاتم می فرمودی خداوند اواللی خلق کم فمینکم و مینکم خداوندی که شما را آفریده از شما کافر است و از شما مومن. این آیه نیازی به رد کردنش نیست، انشالله در بحث خدا و قدر مفصل فقده می که خلاصه مطلب اینی که دلالت این آیه بر اینی که مومن نوشته شده که مومن باشه کافر نوشته شده کافر باشه. بینم اتفاق بین اهل سنت و جماعت هیچ صحابه صحابه هیچ اختلافی نداشتند در این که انسان کافر کافر و انسان مؤمن مؤمن و انسان ها نوشته شدن کافر و مؤمنشون لیکن نمیدن بخروشون اجازه دادن که اصل ارادت انسان رو زیر سوال ببرن و بیان بگن که انسان از خودش ارادت نداره وقتی که صحابه سوال میکنن از رسول الله صلی اللہ علیه و سلم وقتی که میفرمایند به اجدام مشخصه جهنمیان چی جواب میدن رسول صلی اللہ و وسلم اعملو وزیفه شما هست عمل بکنیم یعنی شما اراده دارید بخاطر همین دستور اعملو اعمل ما مو وزیفه مونه که عمل بکنیم نوشته شده نوشته شده کافر ولی مشخصه جن. و پیش خداست خدا من هیچ وقت نمیاز با علم خودش بروافق بکنه ما رو کرده اراده اما من داده که ما خودم مسیحه و مشخصه بکنیم و انشاءالله در وحث قضا و قدر الله این بحث ها مفصل خواهد بود لیکن الان هم بحث از طرف هم شعبی از شعبی هم مفصل و قدره که ما داریم مفصل الان بحث و عدله شنو داریم قیرامو انشاءالله خلاصه. خلاته که من قصده دارم که تمامی استقصاب بکنم عدله و رد ها بودم لیکن همینجا کافی هست. این عدله ای که بردن خودتون میبینین هوا انمن درست یعنی یک ادله یا فهمشون اشتباس. یا؟ نوع برداششون اشتباس اصلا آیه کمکشون هم نمی کنه اصلا دنباله این نمی بکنید اصل انحرافات بعد اینه که انسان دنباله آیه دنباله مطرف را نمی کنه آیهات را کناره هم نمی ده. یک نسل را میگیره متشابه را می گره یا میاد یا یک نسل را میگیره گره بقیه نسل را را می کنه تو به یوتیوب تو به توبع کافر اولو عسل ارحق ببین کفرات توبع کافر واضحه کتب فیوکتب و رسقه و اجلو یعنی واضحه که انتباعات این طبع این طبع این از چی هست؟ از نوشتن هست که نوشته شده یعنی واضحه نه این که الان شخصی که به دنیا بیاد افلا کافر هست و نبیدونم کافر هم هست و نبیدونم فترتی ندارد اختیاری اصولش ندارد نه هیچی قد اینها نیست ده، ده ده ده ده بس بس نمی تونید موسع اعتراض بکنید اصلا اگر اختیاری از خودت باشه چرا موسع اعتراض کرد اختیاری داشته بود مجاز اعتراض چرا این کارو میکنین کار داش نواس انسان اراده داره در کار خودش که میاد اون موسع اعتراض بر خیر اعتراض میکنه حالا بحث مفصلی میکنیم ان شاء الله فعلا ختم میکنیم این بحث این بعد هم همچنان ادامه داره بعد از زیارت ان شاء الله نمیخوام دو سنگینی میکنم اینجا کافیه سبحانك اللهم فهمت فهمت صلی الله علی محمد و آله